فصل هفدهم بیشعوری در رسانه یک اپیدمی واقعی سرگرم کننده ترین خیال پردازی ها رو هر روز در روزنامه ها می خونم حالا می رسیم به بحث رسانه یعنی روزنامه ها شبکه های تلویزیونی؟ مجله ها، شبکه های و شبکه های کابلی اینا رو برای آخر کتاب نگه داشتم چون اگه در یک جا همکنون بیشعوری به حد شیوع و اپیدمی رسیده باشه رسانه است در حقیقت رسانه مدلی کامل از بیشعوری تا تمامه زیرا یک رسانه متکبر و خودستاست خیلی دوست داره که خودش رو رکن چهارم دموکراسی عنوان کنه و به اندازه دین و دولت قدر و اهمیت داشته باشه. در کشور ما رسانه‌ها تمام رفتارهای ضد اجتماعی خودشون رو با آزادی مطبوعات توجیه می‌کنند، اما به مسئولیت و تعهدی که این آزادی موجب اون میشه توجه چندانی ندارن. به قول یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش بشه، آزادی مطبوعات رو نباید با بیشعوری عوضی گرفت همچنین مطبوعات خود اعتقاد دارند که متول انحصاری حقایقن و حقایق صرفا همونایین که اونا پوشش میدن مثل اون نظریه قدیمی که میگفت اگه درختی در جنگلی بیفته و کسی صدای افتادن اون رو نشنوه پس هیچ صدایی تولید نشده به نظر میرسه خبرنگارا هم معتقدند که به جز اتفاقاتی که اونا در رسانه هاشون پوشش میدن، هیچ اتفاقی روی نمیده. به خاطر همین عقیده نادرسته که خودشون برای حضور در حمله پلیس به قاچاقچیان، جلسات شورای شهر، دادگاه ها و یا حمله های نظامی مجاز میبینن. اونا باورشون شده که مبارزه با رسواییها، ها، شرارت ها و جنایات فقط از اهده خودشون برمیاد و بس. دو رسانه شهوت قدرت داره اما چون قدرت واقعی نداره بردن آبرو و اعتبار آدمایی که به طور حسادت برانگیزی قدرت و اعتبار دارن براش در حکم تصفیه حساب و نوعی نمایشه قدرت محسوب میشه همین امر رسانه ها رو به سمت عقد گشایی سوق میده طوری که پشت در اتاقها به هر سیاستمداری و یا در دفتر هر آدم پولداری منتظر یک رسوایی اخلاقی یا مالی فالگوش بیستن. برای ارضای این شهوت قدرت بیشتر وقت رسانه صرف خبررسانی از هواشی آدمای مهم یعنی آدمایی میشه که به نظر میرسه قدرت و اهمیت خاصی دارن اگه صاحب منصب مهمی آب از دماغش بیاد فوراً در صدر اخبار جای میگیره اما اگه همین آدم هفتاد و پنج نفر از زیر دستاشو اخراج کنه، انگار نه انگار چه اتفاق مهمی افتاده. مهمتر از همه این که رسانه به اختراع اخبار یا خبرسازی تمایل بسیاری داره. گزارشگرها و گوینده ها از اینکه همیشه مجبورن وقایع رو گزارش کنن خسته شدن و به دنبال نوآوری بنابر بنابراین، ده از آدم های مفتخور و ولگرد رو پیدا میکنند و اونا رو تحریک میکنند که بلوایی راه بندازن. یا حتی فقط با پروبال دادن به نقل قول و نسبت دادن اونا به منابع ناشناس کارشون رو پیش میبرند. به این ترتیب تش اولیه خودشون برای قدرت رو ارضا میکنند. سه. رسانه سطحی است در رسانه هیچ ماجرایی اونقدر پیچیده نیست که در ده ثانیه قابل بیان نباشه یا نتوان در سیصد کلمه سر و رو هم اوورد و رساله هنوز اونقدر احساس وظیفه و تعهد ندارن که گهگاهی به مخاطبانشون یادآوری کنن که چیزایی که این طور سیاه و سفید گزارش میشن همگی خاکستری هن. ساختار اخبار و گزارش های اونا مثل افسانه های کودکانه است. یه نفر یا یک اده آدم و دوست داشتنی که در محاصرگ گروهی از افراد و نیروهای شریر و اهریمنی گرفتار آرومدن. چهار رسانه بیرحمه خبرنگارا عاشق یافتن کشمکش و درگیری در هر ماجرایی از همون سالای اول کارشون براشون عادی میشه که از بیو غمگین قمگین بپرسن از اینکه شوهرشون از طبقه دهمی ده ساختمون نیمه کاره سقوط کرد و له شد چه احساسی دارن؟ در این حال وقتی که اون زن با صداقت جواب میده احساس مثل اون که یکی با لکت به کوبلای پاهات بیشور این قسمت رو در گزارششون نمیارن بلکه چیزی که به نظر خودشون جالب باشه به میذارن پنج، رسانه نظرها را از واقعیت ها مهمتر میشمارد اگر کسی بخواهد صحت این دارا را ببیند کافی است یک سال مجله تایم را بخواند رسانه ها میخوان نشون بدن که بیطرفن اما هناشون رنگین نداره و همون بیشورند که هستن اونا عاشق مصاحبه کردن با بعضی از تندروهای پر سر و صدا و جنجالیان و بدون به چالش کشیدن ادعاهای اونا حرفشون رو منتشر میکنند. کاری که وقتی بارها و بارها تکرار بشه، مردمم کم کم این ادعاهای مزهک و به عنوان نظراتی که مورد قبول همگانه باور میکنم. در این حال، وقتی که رسانهی بخواد کسی مثلا یک مقام بلند دولتی رو زاگه کنه، او را با انواع سوالهای عجیب و غریب به صلابه میکشه و اگه کسی جرأت کنه به این رفتار بیرحمانه و غیر اخلاقی اعتراض کنه بلافاصله ها او را دشمن آزادی بیان و مطبوعات معرفی میکنن. شش رسانه سعی در جهاددهی به افکار عامه داره. یکی از کلکای رسانه‌ها اینه که به جای گزارش درباره واقعیات از آدمایی که کاملا از موضوع پرتن بخوان تا درباره وقایع نظر بدن. بعد نظرهایی رو که با نظر خودشون مشابهت داره دستجین کرده چاپ یا پخش میکنن. هفت. رسانه ذاتن ویرانگره. کار رسانه نابودی شخصیتای مشهوره. گاهی اوقات خراب کردن یک شخصیت از عهده یک خبرنگار به تنهایی برمیاد و گاهی هم باید چند نفری همدستی کنن تا یه شخصیت بزرگ نابود کنن. در چنین موقعیتی فقط با پیش کشیدن چند سؤال شخصی میتونن یه نفر و بیعتبار سرفکنده و چنان رسوا کنن که مجبور به استفا بشه. اما مدت ها بعد؟ وقتی که همون شخص با زحمت فراوون بتونه اون اتهامات رو رفع و خودش رو تبرئه کنه، هیچ رسانه ای این بخش از ماجره رو پوشش نخواهد داد. البته رسانه ها این موارد رو انکار می‌کنن که چیز عجیبی هم نیست. چرا که انکار یکی از خصوصیات اولیه بیشعوریه. گهگاهی رسانه ها به اتهام یک جانب گرایی واکنش نشون میدن. اما این واکنش محدود میشه به پخش میزگردی با حضور یه مش صاحب نظر در مسائل خبری که درباره این قبیل انتقادات در حدود 25 دقیقه با لحنی جدی صحبت میکنن و بعدم بسته به اشاری اتاق فرمان یک کارشناس پیش با نطق قرایی در ستایش از آزادی مطبوعات محفل رو به اوج احساسات میرسونه. بیدرنگ همه سخنان اونو تایید میکنن و بیشوری رسانه یه بار دیگه له میشه. بنابراین ما نمیتونیم به رسانه ها برای فاش کردن یا معالجه کردن این اپیدمی چشم امید داشته باشیم. اونا خودشون عین بیماری هم برای مبارزه با این موزل باید خودمون فکری به حال خودمون بکنیم و رسانه ها رو هم مجبور کنیم که با مسئولیت پذیری بیشتری رفتار کنن وقتی که جورج بوش به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد، یه روزنامه مهم ستون تنظامیزی با عنوان دیدبان رئیس جمهور راه انداخت تا در اون هر روز خبت و خطاهای رئیس جمهور گزارش بشم. چیزی که ما حالا به اون احتیاج داریم اینه که به تقلید از اون اما به طور جدی یه دیدبان بیشعوری به وجود بیاریم که هر روز بیمسئولیتی و سوء استفاده رسانه های ملی و محلی اعم از شبکه رادیویی و تلویزیونی روزنامه ها و مجلات رو برملا کنه چند یافتن نشریه‌ای که شهامت چاپ چنین بخشی رو داشته باشه شاید از معجزه ی زنده کردن مسیح هم عجیب تر باشه